جزاك الله ما شاء الله اداره تیم ما و امور شرع در مبحث تضادات شکافی اخر بحث مبحثی صحبت شد مقدار حجم مناسب و با این بحث و در شریعت انظار مناسب گذاشتن تو دید گذاشتن این بحث در دیگر محلسوندر به جمرورشون نسبت داده شده که کتابات خاص برای حاضرین و برهناهله نسبت داده شده که برای خواهدین و مدرونین هم شما و توضیح رو من ارز که هست که احتمال دادن این مسئله دوباره کلامی داشته در رسول وارد شده و از رسول تنه کردن در فیر تطویر کردن و که املا تطویق موفقی در شعر نبدارد توبیهات جدشتی یه تکرار نید از شد که مدهوم اصلاف نظار و این معنی قرار داردن که آیا خطابات قرآن خطاب حقیقی است یا خطاب این شاید. و توبیهات ایشان همگذشتی میادید تکرار کردن و مدهوم اینجایی بیشت از آزاق منسل و مدهوم این را داردن که آیا خطابات قرآن از قبیل قدریه حقیقیت یا از قبیل قدریه خارجیه معنا رو بعدی هم پراردن و سودیه اون هم در خود ما دلحاظ قصوری اگر از نظر از کلامی دلحاظ قصوری رو مسئله رو بحث بکنیم قصر رو بازدیم ذاقی کرد. فرمسی قرآنی از قبیل یعنی رابطه ای به این مخاطب که مثلا خدا همه مختار باشه شده مقدس باشه و بر احساس رابطه حبیب و موازین تقسیل روشه یا برحساس رابطه قانونی، یعنی این به اصطلاحه رو حساب کنیم. از در مثلا حبیب و موازین خرص که مثلا یک خیلی تفسیر به روابطه عبید مرگانی بکنیم ستا عبد خودش رو جمع بکنه به هم از شما یک دلگاه بیاره مثلا میبار میسن پیمی آگه به دیگه آمن و همین و سالات از دین و عبیده این مراد ما تفسیر کتاب قرانی قرآنی به رابطه عبید و مرگانی و اما خطاب قانونی در کتاب قانونی اشخاص رو در نظر نمیده اون ما در نظر میگه مثل مومد مکلب مثل پرسون ایرانی مواطنی با اصطلاح موزیحات همشهیل کسی که مکلبه کسی که فرض بیرین که انسان است یاری و نام سیاری ها در این آن است عنوان در نظر میگیره و اشخاص رو در نظر نمیگیره و این خطاب از به عنوان که تمام افراد رو شرزان روضوی باشن حاضر باشن نباشن پردگاه بگه باشن الگی اون رو در شامل میشه در نطور خاصی در و لضا از بدین جمع کردن سر نفر تو توقیه خطابون ها نیست چون این این که محمد یا محضور یا انسان یا ایرانی این مخاطب واضعی هستند. برس کردیم به لحاظ قانونی در کلمات قصوری دیگه این یوتا فردی یعنی اصلا بستی در این جرد نگردن. بلکه در قصولی محروبی که ما داشتیم در نظام اجتماعی یه نظام محبید وردگی به اصطلاح ما بوده یه بوده خاری نخواهی ارتکازاتشون همونطور تنگیم شده بود و از که در مجالات مختلف سعودی دادیم نداری فرصت مثلا حتی در بحث زبور لفظی هم ادوی از اعلام این رو تکثیر دادن یعنی انعواز سکول مستمد به رابطی هم یه مولاست مثلا مرمون نایی نظر ساده هم که سیقه یعنی جدادتی برموشی بودن به لحظیه میکنه جدادت میکنه برای این که مطلب و مولا حاصل قانون به اصطلاحت اطاعت عبد از مولا رسومه اطاعت عبد از مولا اختضا میکنه که هم این مطلب رو که مولا ابراز کرده انجام ده. بلا با دلست در حجوم نمید مرموم که این هم حتی صلاح همین و در شوزی و هم همین هم هم دلازت دلازت دلازت مرموم شودی که مرموم سید ماغذان هم در حدیل همین مرمومات از قدیمه تازیه هم داری نیست که این دلازت یک دلازت با تربیر در برزی از مرمومات حقی نیست یا دلازت خوبالایی این مرحس در مرحس بودش رو زید دارد این در نظام حقیقی و مرادی رو حتی در مقام دلالت لفظی تصویی دارد چشیدن اما در مرحس قانونی بیرین بحثا مرحسی اختفاق قانونی مدیول معاین قانونی خود رو دارد هم به حافظ حقیق مولا ندارد و در موادد یه اجتماع که موجود توبیه بیشتر بیشتری داشت به داده شد از فرودت دانم اون نقطه فنی شد اینجا بگم رو من صحباً رو هستن که تکرار اون نقطه فنی اینه که درهاد اعتبار هدو اعتباره یعنی هم به هستن اعتبار کانونی هستن خودش هستن. به به خودش به یا قانون مثلا به فرص ببینیم که رو تمیز کنیم مثلا به بعدی خودش بگیم در حیاظ رو تمیز کن یا قانون بگیه که همشه به اصلا که در شهر زندگی میکنن شهر به خودش رو تمیز نگرده داره فرق نمی یعنی مکلف به اصلا یا مثلا آقای شهر رو تمیز کنیم بلاد اعتبار هر رو اعتبار و از کردیم میشه رسیم شوداش اعتبار هر به اعتبار باید این این نکته یه هست که به نشده وجود این نکته بیاند در کیفیت اعتبار تحصیل و ولو اعتبار است یعنی این چیزی نیست که اصلا در دخت یکی باشه یکی بگذار این نکته این تحصیل رو میزه در مورد رابطه ای که مولا به تمام وجودش یعنی به پوست و سخون و پوش رو که مولاست خب اما در قانونی این مکملتی نهی است، ما که ها مقتبر منه که جایل منه نیستن از من یه ببایت یعنی حضرت می مردم چی میگن میگن نه رابطه مردم آدم باید ما که عبدال مولاست میرد که شما نه دارم مرتبا نیستن ترا تصویر ما واجب است در آنهای اطاعت ما اونو باید هفته اطاعت دارم باید اطاعت ما نه که میرد که ما باشد این ذراعه کار در من منشم شده که در مبارد سخوصولی که الان در دنیای اسلام و شیب سنوی و شیب مفتحه این زرافتها رو درست فکر نکنن در دلاغاز اتفاق کوچه قانون میگه لباسش لباسه مثلا کچه به تمیسون قانون همونی شهرمندان با کچه های تمیسونند و که کتاب به یک نوطری داره که شدار هم دو نداره اون نوطریش اینه که در موارد راوزی همون مولا هم به ذاته مولا یعنی گوش و گوشت و همه شیده او در بود این نکته، یعنی ملکیت ذاته برای او برای مولا این خواهی نخواهی در برخورد او با اعتبارات مولا تصفیل میذار ما خدافن مالک حریزیمه که اعتباریش مند شد از که مند از بسیاره گفتن مثلا جده از اون خارجه اون یه میان که دیگه میسه از این مثلا گناه ها مالک که مالک نیز بر طبوع گناه ها مالک میشه این اصلا در حتی میکیه در مورد از این تر صبحان آقارا تصویی نمیشه احکامی شدن تک بیمیاز داره احکامی شدن چند در حتی می برز به تکریم نیاد اگر بلاحان زمین ساد اعتبار باشه بله دیست میشه دوی ملاقا من درستا بازم تکریم نیاد در این میدونیم تکریم نیاد ملاحظه خود روشی پیزاسه اما ملاقا ملاحظه اونه من به تکریمی به عنوان زمین ساز اعتبار در قطعه این توبانگیه خیلی قرآن اون ملکیت از پر در, در تکریمی به ملاقی و به خارج نخواهیم کرد. نمی‌باشیم. هر وقت یه چاره می‌گوییم می‌کیم، می‌کیم. از که فو بیم از. از از داره نگو نخواهد کرد. یشود از از داره اتوات اون غیر می‌که که ما از در داره برو نگاه کنیم. اینها ازش نمی‌تونند باشند. به هر حال، مشهد، اسلام، نگرانی، ترکیه، دوشی، آیات قرآنی، حفیظت به خدا و بنی‌ستانیان، همه‌ی خب یه چونی که تو میگیدید یاده چهار وقتی شده اون وقت ما نتیجه رو که گرفتیم بیره که به نظر ما همونی مقضیی قضیه این راهه نه اون راه که تا را شده یعنی همونی مقضیه به حقوقی صدافه این در به حقوقی دینه یا ایراندین آمنو و عقیم و رو تفسیر این یا آقایی هردی نامنه یک مولای صد تا بردش رو جمع بکنه یک از ما بخواهد اون خبیلی یا به یادم کاری به نداره اون معمن مومن در نظر نیسته بگیم مومن این کار رو باید درسته اون کار به و رو رابطی این مولا نداره بس نم رابطی که امروز ما در حوامد بشری داریم باید هم به مجلس تصویب می کنه مجلس یا پارمه تصویبون نازر نیست و که امروز روز در این حاضر در مجلسه این کسی می گن لرواقظه این و مردم می بینه. من می گینه من توضیحات این مسته من چند و لذا ما از کردیم اگر و این ایش آه آه آه آه اصلا اهل سنن تبرای جمهوریش مقارش در مختصد و آزرینه خیلی از اون جهد کلامی من به نظر من جهت و هم داره خیلی از اون کلام چون جامعه جامعه بردید یا اولین بردین آنه رو سیرین که کسی به ست تا برداشت که این کار انجام بودید مثل اون میبینم خواهی نخواهی ارتکاز و غرفی مساعده پس این مساعده به بایید پس اصولی و ما و هر اینجوری بداخل د آیا یا یک شتابیست مثل در حدیب یا یک شتاب قانونیست عبدالمولا مثلا نیست مکلم شروعاً یک شتابی رو موجه به این آنگاه می کنن در این اصلا رو همچی به نظام را نداره اصلا اصلا مسترد میشه و اصلا اصلا مسترد میشه ارتباع بوزن ارتباع در هرگاه اما اون ریشه اعتباط، چون ریشه بردگیه یک جور خاصی سینه اعتبار رو میکنه توی ریشه اعتباط، چون آن نزیر دیگه برداشت کنند مثل بردگی که ارموزه در دنیا یا در دنیا یا ده ده ده ده ده ده در, در دنیا رجم، یکی خیلی رو برداشتیم در تشاره مثل مرس و دینا که پارلمان دارن، پارلمان فرساند چیزی برداشتیم که مجزد اینا تا تصور اینه که مو ملکی دولت یا ملکی مجلس یا شرکتی موی اینا نظامی مکید تا تصور نمیشه چون اینا ولی آ کل درایته قانونیه نه در اختیار مالکانه ما اما ولایت این چیزی نیست نمیشه چون وقتی شما تصور کردیم ذات شما که کسی ممکن ممکنه حتی تو مقام اقتصاد رو در نظر اذا من این اینه که اگر نظام نظام قانونی باشه، حساب فقط به قانون باشه. وجود مو... معتمدین و مراجع دخالت نمی‌کنه. اینکه انتخابات مهم بشه رو ببینید. اما اگر عبدالمولای بود که هم دخالت می‌کنه. چه خب، چه نه خودستون دیگه خودمون می‌دونه. تو انتخابات هم هر کی من تا مورد دستوری ندارم می‌گی من بدم تو چه خیابان‌هایی؟ یک خیابان رفتن و هیچ وقت از اون حالا من نام دیگه، این مقام امتحان دیگه دیگه مولو از من نام کرد. او چه وعده کرد؟ هیچ حالا ازش چه اونو بگوید؟ قطعا مولو پوزه کشیده نیست. دیگه آب درست آرزو نیست نام داشت. درسته گفته نام تو دقت کنی. یک آمده یک خب نه، این داشته. ولی اون آها آه تو از من خواستی نا من نام نریگه دیگه نه اصلا اینا رو ما من نمیخوام برو برگردیم دوباره از اون خیابونه که گفتم جایز نداری از اون بگردی یعنی حق داره مولا رو کارا بکنه چیزی در نظر خوب ها خیلی بعید نیست اما در نداد مولانا اصلا ماامریه تو دلش مرت اشتباهی آیینو بحث کرده اصلا محمود فرهنگ درست به وجودی گله اگه ما رب الی عبد مولا میریم انصافا اما راقبطی قانونی دوید این سال هم دو ساله نظام قانونی که باشه. شما <تصفح> اصلا چون قانون رو این است که جلاز باشه شما بردید نمانگه مرگز شدید جلازتون باشه. اصلا قیوان قانونی ها بکیم کنه چیز باید پشتش اخوه باشه قانون قانونی که اصلا قانون رو امیده‌ای غربی‌ها برده بوده تفسیل‌شونه اعتبار قانونی که مشتنه بوده این همه از جزا و کیفر توش کیفر قانون حالا؟ اگر پرشتوانه‌ی ایجنه حالا اون جزا ممکنه انواع مختلف باشه پول باشه، معلومیت سیاسی باشه، معلومیت اشتماعی باشه، زندان باشه چیزهای مختلف ممکنه باشه، جزا باید شوش باشه بخص دیگه ما دو توبه یک مقدارش حقیقی هیست اون مقداره حقیقی توبه یا همه رو یک مقدار توبه شریفی در کل اترام آمده نمید در فنه قوامی باشه یکی از قباله دیگه در اترام آمدن. که انسانی که مرتقل کبیر میشه توبه هم باید بکنه مرتقل سقیقه نیوار انتبایشتن رو کبال ما تنهان هم نکفرند سقاله مکفران هم اما کباله مکفر ن بحث سهرایییی داره ولی خب ما چار فلسفی مسئله داره ما نه خب؟ یکی میشه که شده شده. دیگه روایت دیگه‌ای انجام داده میشه کوشش برانده دو روز نمی دونیم توبه کردن و گفتن درشون دیگا که مرتکب فسر بشه فاسج بشه اصلا نمی شه واسه بحث سهرایی و دیگی ملا دیو میشن بحث سهرایی اینه که برای توبه خود نمازهای واجب توبه است کفاره است از طلابات و ترس مکفرات و ما ها نه؟ نه؟ نه؟ نه؟ نه داریم؟ بله اهل سونت بشیگه بله سونی هم داریم سونی همین که نماسون پاکی این بحث توبهی چه؟ به حلاظ به طور و ظاهر ظاهر رواییات و عدلرستم این مصبه را هم مرمون استاذان در بوجنه و جلد هفتمش بحثی فرقیه توبه هفته ولی بحثی داشته مفتراب اون سکته شدن که این بخش نه آنها شده بود ما نجای که به فدمتی شد اون بخش دیگه توبه در قوانی بشری نیست قبوله اما کیفر هست؟ چون توبه در اون قاعده کل بیشی توبه این مرموه عام داری آیوان این عقری است. <تصفيق> یه مرموه این مرموه عروبه همه قوانی هست یعنی همه انسان ها مثلا دعوت بودن شما رو بیاریم به خانو درمت کشتایی هستیم یا رو بخانو بیاریم این معنا عقیله به قطعه نیمارا عقی و اقلالی باشه عقی بگیمه اما اون معنی که اگر شما مخالطه دولت کرده توبه بکنید این عقی و اقلالی نیمیست این در شرق مقدس آمده در سهاده نیازی به توبه نیست مکتران اما در کواد یعنی تنگلنه باقیم می‌تونم بعضی زباله‌ها ایمان به جکت کشیدن رو کنیم، مثل تبریزی که شما یک سوزن کیهی می‌تونه به سر آخانات انگشتان بزنی، خودشان خون یا سویش اما اگر این صورت را با مثلاً بازی کنیم، این حتما مجبور شدیم کنیم، زمان می‌کشد. نه صورت را. اگر به کیهی کردیم، خونمان این بار که هرگاه تبریزی مجبور شدیم اگر نشان دو خونی اون نداره این دو تا این کویان در دستلاب قرار می‌گیرند. این که میان علما و اسلام خیلی یعنی مشهور این طور که مفهوم اخریق است که سرمایه‌گذاری ربون از سنیان تعریف کردن که از سنیان که مشهور علمای اسلام چه سنتی چیزی فراهم کردن زنون به کبائر و صغائر که یکی از شواهد ثوابری هم در کار می خون یکی از شواهد اینه که صغائر متفراتند توبه یعنی که انسان کبائر انجام نداد خود صغائر مخاطره ظاهر آقای همون هم می‌کنید یه انتشتن کبار تغییر دیگه هم شده قبول دارم اون ظاهرش اینطوره انتشتن و کبار ما اصنه همه هم نکر کارم کنم سریع آز خود سراره مکفرده خیلی از وست داری زنه این یک یکی مقردیس که در اصول و در بخصایی قبولی خیلی تاثیر داره یکی از تحصیل روشن بخ من شون چند بار از سلام بیگم ما در اونجا برس در یک عراضه روح, روح نظام اسلامی امساقا روح نظام اسلامی بر خطابات قانونی نه حبیل و مبادی. اون روحش اینطور روزیاتشون هم یاد اصلا شاید برسی خیلی باری اما خصوصیات یاد و عدبی یاد یاد عدبی ها اون که اونی شما من ادبیات ها تردوی ها تبدو اما قانون شفا... روز قانونی یاده نه عبد و مورد ها این دسته ها یا شفاقات قرآنی خاص به حاضرین هم. یا شامل قائدین و محضورین هم میشه جوابی هست که این صاحبا شامل همه میشه چون قانون سوال همه میدیم اما تو فروه مثله مثلا ها یا به اجتماع بشین و بشی؟ اگر قانونی باشه ما با غالب اجتماع بشه، اگر با بشه. هم دموقعات باشه غالب امتنام باشیم که مشهور هم غالب امتنام شدن هم قانون هم میده این انصافش بلید نیست ما در خصوصی ها بلید این به عدویات حاکم بر به اصطلاح آیات و به و در اصل شروع بوده قانونیه به دو خلاصی در اینجا در کتابات شکاییه نصافا این هست که روح روح قانونیست و اما تفسیر در هم در مولان در خصوصیات بد نیست ما در افتیه مختلف خیلی جواب نمیده این هم خلاصه نظر که میخواه و یک احتمال جمع میشه که در ماشه یک احتمال دیگه که این از احتمال دوم ما بود احتمال اول ما هم این بود که اصلا یه نوع عددیات بساید اجتماعی که به زیره شتابه اصولا قانون لازه نیست زیره باشه این مثل این بوده یا یا نام آنون تجبه و سلا همینون سلا اصلا شتاب درش مخاطب بودن مفهنی سویلی مخاطب حاضر ازدن این هم توضیات شده شده شیلی شوقانده که قرآن تحت تفسیر جعفری توسط شده با تدبیری شد. اما وقتی روز قانونا این قسمتی که ملون به روح قانون نه هم حالت روح القوام می کنه اما اون در فروورش و خصوصیاتش ممکنه که اثر تعریبیات واقع بشه از قانون اسنادی مقاله چی یا نه اون که ما هم ممکن ها رو داره این سیالا بسیار نه در ادبیات بدنا نه که تخم در محیط قانونی که وارد شده یعنی فقط توی بحث اجتماع نه وارد اجتماع می‌شیم که وارد امتناع بشیم اگر قانونی باشه به تمام خصوصیا با وارد به اجتماع بشیم البته از زوردران قابل به اجتماع هستند خود ما هم اعتقاد می‌ییم که به لحاظ قانونی اجتماعی هستیم به عبور به قانونی یعنی نقطه احساسی در خیلی در مبارض این نقطه است که آیا مقام انتصال سرد در در اختیار عمد یا تو مقام انتصال هم شارعه و مقام نظر داره به اون نظر داره این اصحابات اینکه رابطه رابطه عرب باشه لیکن نه اینکه واقعا رابطه باشه لاخت شاید بیاده تقریبی شیده قانونی شیده و این ادبیات میذاره، ادبیات نیست تأثیر میذاره که نتیجه دیدی. میگه توضیح مطلب شما چطور به اجتماع میذاریم داشته باشیم، آماده میذاریم جدی میذاریم، بذار تو تجربه فرد ما زیادی میشن، تقریباً گویی بیشترین تیروسیم. انتظارم که من همه دیگرانی که مزمار پولی توانده آخرین مطرح کردن، تحسیس مربوط به این که اگر زمین به بعض افراد برگرده بردگرده، آیا هم میشی؟ آیا این دارو کرد نشانی درست دارد؟ و مطلقات ترمیقا صفیتاً بسنه و انفرسانه صلاحات به حروب در مطلقات به طور کلی حکر شده که ادهه اونها سه قرد یعنی سه طور شده بعد همرا به نه همونه احق برده این نفیداره و که شوهرونها احقا در این وقت در مطلقه به چیش چون با این نداره و در ایام نیزه سرکتونه همون چه دو نطور ا این آیه مبارکه موردش در مطلقات به اصطلاح یعنی اولش عام به درمونش در خصوص اون زنی برمیگرده یعنی در مطلقات رجوع این رو بحث که اولا بحث معروفی هم دارن در همین مثال آیه هم دارن دیگه گفتن اینجا اساس عموم محکم برمیگیم به بر اساس عموم از دیگه گفتن نه به قبولت نه به اصطلاح اصاطر عموم محکم نیست و میگیم بغولت و هنه به اصطلاح فخصیص خوده و آن فخصیص خوده و از اول مراد بدیه از مطلعات اصلاح همون که ایمون و بعضی هم قاعده به اجماع شدن چون دو اجمال هست یه اصطلاحی هم در اینجا بکار بودن استخلام استخلام در اصطلاح علمای بدی اقوازم اینم که در این آیو که متبر فلسفه اصطلاح شخصی شخصی بدی استخلام که زمین یک است یک مرجعی برگرده که از زمین هیچ چیز ارائه نمی داره مرجع چیز یگی یا ندار معنی که مثلا سما وارد واقعا اینا که اگر آسمان او رو ما مثلا میشرم یعنی اون مثلا چراغی کتاب بشه این مثال معروفی در وقت خودش بحث در این سوال یا اسالات العموم خودش محفوظه و قاری باشیم که به ولت هند به بعضی درمیگرده اكثر امور رو تعصب بکنیم یا نه اصلا این تکلیف میذاره بر اساس امور جایی نیست یعنی ال متلابات یه معنی نداره چون اینکه ضمیر برگرد رو برگرد اخراق یا بغیر معنی حریری این انه به اساس خلاف عرفه انصالله مثلا کسی از علمایشان منظر ما بودن و به با باعث از اونها موافقه کردیم یعنی با بعضی از اونها با بعضی از فقهاشون علمای مختلف بودن با بعضی میتراب بذاره بعضی اون بلی علما دیگه مثلا یا مثلا علما هم مرزه در ما با اونها گفتن آنها به خصوص خوبه هاش نبودن بایی اوچه در کنم فارسی عربی سه تا و با استاد در اینجا نمو فرموندن یا رایی از محومه باید هم که کلام موجیمنه توضیح هم ده ده ده و من حال یه توی میکنم که شایدر ماضی جدی که کفایه کلامی هم از مربون ناحی نقد کردنن که به اسات بهمون برمیگردیم خودیشون هم نظرش رو میکن نه اساس اون برگردی به اصلاح خودشون اساس اعدمما استخدام آوردن چرا اگر اون اون باشه با این زننی رو بعدی بر میگرده زن زندید به کل بری برنا از ن نکردشون ک این بحث در اینجا مورد نداره ام آمی متلقات عامه یک ککمی درشون آمده ادهشونه قدرم از با اولت هونه آمی که بعد مجازه میشه بازم بیه کار متلقات و احق و برده اینه از این احق و برده اینه بودن نمیفهمین که این نه از با اولت این مثال رفتی هم به موانند متلقات عامه با اولت هونم به هم معنی عام برده یک ککمی خاص برش آمده احق این هستن وقتی نزد بعدم ممنون ها رو چند صفحه صحبت کردن. اول کلام که پاید نرکنن نرکنن کلام من نرکنن دو سه برد کلام نرکنن نرکن خودشون من مناقشه برمیدن در کلمات نرکن و در آخر بعد خودشون نتیجه دیوی که کردن نتیجه آخرش رو خدمت آنه هر جور یعنی به متلقات بر میگردن بردشت... این یه دیگری میشه این, می این احقها بررده خاص میشه به بردشت... بردشت... نه نه رجی بوده از هم در اردوی ایشون در صفحه 2019ه جهاز 5 فرامدن قد استقر و انده توش نتیجه امتا صحیح مسئله حوال قولوستانی یعنی العقل و اصالت عدم استخداقی نظر موارد خودشونه. دون عموم. كلام اكي اكي اصالت عموم. چون ایشون سره مجموعه کردن. اجمال کلام که از است. اصالت عموم برگردن که از بانون یکی اینکه نه تخصیص خواهد چون اگه حقین بگیم و اصالت عموم اون وقتی مشکل پیدا بکنه استخدام بازده نمیاد. ولی که استخدام رازم نیاد با اول سانه این با اوله مطلقات تخصیص این مطلب اولیش و علیه فکر کل مورد نظافر و در دوران و عمر بین انتظام به استخدام که یا استخدام بارد در زمین برد یا اصالات حموم این طرف محافظش یا, اساطح... یا استخدام به اساس حموم کانم لازم علیه در حساب عموم و تبقای زهور کلام فیل از عدم استفاده در هر مورد یعنی شد همینطوره ایشون اینجور کنم درد مورد مرتب که آیه کلیمه او یا اون که شدیه آیه هست موضوع مسئله هی موضوع از از تو من راجع به آن که خصوص بعد درستان به زمی و بعد، خضارن ان بین استخدام به استخدام و بین از احساس عموم و قدر زمین راجعه که مد... آم هلال آیت مستعملی خصوص هم مطلقات چون هم بعد تخصیص مجاز نمیشه بله هم مستعمله که و تخصیص هم همه هم خارجی و همه هو... لا... یعنی به جد عهد الهم هم یک خود این زمین و وردی آن برگرده موردی در فرد داره یا نداره صغرا فرد فرد امیدار وردشون فقط ها اصلا این صغرا هم نداره این مسئله در فرد صغرا هم نداره خب این سؤال در اینجا میدیشون بالا فرد کل مورد اداختر رو در درمه اگر چین چیزی این فرده چیه با نمیترم این فرده ایسان وقتی ما در فقیل یک مورد هم نداریم که درانه هم بشه داریم و که داریم از ثانیه اندل کریمه و مشاکله ها وقتی شما بگیم نداریمون حضر در این آیت و مشاکله ها چنستم از ظاهر عدم آیه سوی منون من رو نمیجرد به قضاییم بیان احکام شرقی یک مورد اصلا مورد نداریم و دیده در حساب در و رفت در حساب در حساب و آرام ها در که ترکتم. الان بحث پیاده این مسئله ثمرشون چه چه اینا اخر بحث اصلا که من چون اولا از کردم این چه مسائل طبیعتا من قرارن حد کردم. از اواخر قرن دوم شروع شد. این مسائل ظهورات و محاسبه‌ها از اوایل اواخر قرن اول خسر شروع شد. اواخر قرن دوم بصورت چه در اومد؟ و حفظ کرده این چی بود به گذرت هر محیاری که در اکثر این مسئله مورد داشته تو اصول بزنید هر محیاری بود مثلا شبیه اون بود لیکن فقط در یک مورد فیض مورد او فکر بازه شنگید تو اصول این بسلا مورد داشته محیار زاده به مسئله اصولی این بود پس این تلازم ویدونم وجود که شه او این تلازم چون در چنده این مورد لفت دور کار بردار اسمشون مقدمه باشه تااند به فیل واجر و به این است که اگر هم به روشی مختصی هست چون هم تلازم مثلا هم تااند مثلا بید. اگر گفت برو گوشبتر معنیش اینه که بازار برو ما تلازم بید. اگر گفت برو گوشبتر معنیش اینه که نخواه این هم تااند اینا گفتن که همه بود واجبی بود معارضش میشن حرام ملازمش میشه واجب شد هم بحث و بحثه استغفار یک بذار نه یعنی خب اما فرض کنید بدن گفتن این که شاهد به کاری که شماش شوندی ان بعد از زیر ان بعد از طورش که پاک شد که خودش پاک میشه حتما دیگه هم پاک میشه نه میگم دیگه بشه اینم تلازم طرف میگه پاک شده از و پاک شده که اما نه اون اجازه اون این تلازم هم. در وقت مقدم یه واجب اردن تو اصول چون در مصادر کن کاربور اون تلاغون تو به تذکره نمی بشین پس برابطه این قاعده ای شد از قبل هزار سال این قاعده اون مراقب بوده تحجیب از مرمو موسا هم بشینی که در افتاق و اصول ما افتران خواهد تونجه نشده برون روح هم بشین اگر شما این هیچ تو توفیق نداره نه آن اینجور که مسئله اصولی است این مسئله اصولی نیست نه که لاس یک مسئله که در فر اصلا حتی این مورد رو کنید این مورد رو بدارید چون که ایشون یک از هم با مدرورد از احضال اگر ما مسئله رو مطرح میکنیم بعدشون که کل مورد بگیرد این رو رو هم دهید مسئله ترمید سهلا و اصلا چون اگر کنم اصول مثل مباحث مثلا خاصی نیستیم باید توشون فرض بکنن این تو بوده هر مسئله که در چند مورد کاربور داشت بودشن تو اصول هر مسئله که در یه مورد کاربور داشت داشت این تو این اصول نکشیدن سه بیگار مثلا اینطور طور نه بوده که این تقسیم بلیمی حساب باشه شما که میتنمون یکی سمارهی در فیارشون هر بسی این نیست که لاکر طبعه آقا دیل مثلا و آقا دارد بسی اینه که سه در اصلا اصلا این, این مسئله رو سی وقتی ما در کار برد نداریم یک آیه طبعه هست اون آیه که شما فیده از هم در بردید حالا به می‌کنیم یه اوضاع هم این آیه حالا فکر می‌کنیم این هرگز نیست در این موضوع نیست مورد نیست؟ باتری که حس بنا ورگی این یک مفکری است اصلا آقای این مسئله؟ خیلی مختصر هستند بود آقای این مسئله؟ در اصول داده بود مسئله اصولی نیست. تقنید این یک مطلب، اگر اون یک آیه واحده هم مورد باشه که ایشون کرده، کردن تا دوست هم اون مسئله اصولی قرار نمیشه فردی لبه اوارت اخرا نکته در خیلی در جرد اصولی اصولا در مسئله اصول وقتی در یک استدهاری بحث میکنن نکته در اون دست رجوع به قرفه اگر این مطلب قرفی نباشه یک انهباهات ظهور و هم نمیشه مثل هم یه زارن علما و و لفن خلچ و لفن اینه خلچ و خب این ارفی او نیست نه فارسی به او ارفی نه عربی علما منظر من آمدن و با آنها گفتن با آنها این به پنج شد تا بودن به پنج و میان خود با آنها یه زارن این به هستا گفتی بید پس این که زمین به برز آن برگرده این ارفی نیست تقییم در این آیه مبارکی به کار برده شده. فوقشون چه کلام مجمن یه مورد وارد کلام مجمن پس نه ای داره برای انعقاد ظهور نه نقطه داره برای انعقاد در اصول فقر چون منشه ظهور نداره وقتی استعمال قرصی نبوید منشه ظهور نداره وقتی منشه ظهور نداره اصلا نمیتونیم ادعایی هیچ نمیت کار دارشون چه ها در که گفت کلام مجمنه همینه حالا به تو دیگم عبارت که پارو خداهای مراجعه بکنم بیرون چی در بیان از اون طرف خوب دنگر یک دکتر فنی فندنیه که من بحث رو میگرم اون خوشیسی ها دیگر به خود کتاب تو نردشه این نیام نداره ببینید آنی که آنی که آنی که من در رفعیت از اساس عظم استخدام نمیشون اساس عظم استخدام ببینید در فرق میکنی یک نقطه من این نقطه فندنیه اساس عظم این اگه شک کردن ضمیر مراجع خودشه نمیگه راضی چیزی نمیگه ولی خب حالا ظاهر کلام به مرزه میگه خب این خیلی اورقیه خیلی روشنه. البته من کاری اینه که گاهی وقا یک اعدی به صورت تصریحه گاهی وقا به صورت این اینوضا باید اشتباه نشه. مثلا یک خلال گفته شک داره که این ضمیر بر اون مراجع شناسه به چیزی از میگه اما اگر یه کلامی که میبینی در آن ببین نه امر الهی حساب عمومی وارد نگاه می‌واد حساب اداری خوب دقت کن اینجا محدودیت حساب اداری استفاده جاری میشه که اوی خوی می‌فهمه اینجا مرکبه بسیط راست هم ویشانه یعنی این اصول اوغلاقی ریشه اصلی اوغلاقی داره اگر افسران یه کلام ما گفتن شک کردن تا یادتنی که به مرجعش برمگه او چیز دیگه برمگه خب مرجعش برمگه از تا ترمه دسته این ارفیه لایش با اما در اینجا به مثل اینجا آیه آمده از ما هم اصحاب عموم داری و هم داره مطلقات یا طرف بسته و انا خب اون روزه اینه اینه اده برای همه مطلقات رجی و باستانه با در اینجا شاید مراد شفایی از این مناقشه که کر در اینجور جاها اصال تعلیم استخدام جاری نمیشه چرا جاری نمیشه؟ درده. چون چین مثال های عرفیت نداره چون عرفیت داره منشه ظهور نمیشه نمیشونید یکی حقیق اقراقی با موردید که مورد نداره ما دلست بکنید اصلا یک چیزی که اندشت اون مراجعه کنید وقتی مورد نداره به چی مراجعه کنید؟ هم اشتر و من که اشیسته به اشتباه بر مستاد که اساسا در استفاده حلون قرار داده هر شده به این اساسات عدم استفاده به صورت تفصیلی یعنی که شک بکنیم یه دفعه اساسا عدم استفاده در اینجا مرکب در جو مرکبه چون با اساسر عموم عارضه و چون چه مثالی اورقیت نداره این عباده ظهور نمیشه چون این عباده ظهور نمیشه اصل قرار پیدا میشه این نکته است در وقت این اصول رو که می‌میان خود دفترتون روی گفت دریان منشأ این اصول رو پیدا کردی. اساس آدمان استفاده کاری که می‌فرمودند در صورت ترکیب هنگ باریشانه، اما در صورت ترکیبی نه هرگز ترکیبی باید. یعنی باید, باید اساسشون اون دیگه معرف شده. یکی دیگر ترکیب قرار گرفته با آدم قدمی ما اول اصول ما علم جمعی. وقتی طرف علم جمعی شد، دیگه اساس آدمان استفاده شد. چرا؟ چون جریان هست منوط هست به انعباد و این چی موردی استعمال ما نظر می کنیم این استعمال ندرستیم ظهور و نمیشه پس اساساً تردم استخدام که ایشون فرمدن درست و اما اجمال منکر با این تحصیلی که ایشون فرمدن خود بنده اینت اینت. از اقلاق تحصیل این است که حصولا متلقات در در اقلاقات آم نیست این ایک اشتباه رسیل رسول آمده به اصولای در اکثر آیات و قرآن این مورد خاصی ها متلقاتی که نورانده کار رو داشته متلقات رشیه مداده هستیم وقت متلقات با در عده از احکام به سنت رسول الله بهش شده این ضعاقه توجه ها نشده این ها دقت میکنیم مثلا سوره طلا اضافه طلاقون اصافه طلاقون این خودش متلقات رشیه است. بعد می کنوند از که روحنه حق مسکن داره مثلا عمر می گفته از این آنی می کنوند متلقه مسلما حق مسکم داره چه چی باره خب حالا تو تو باره نیست لذا بین علماءی ما در چه رهده بیش حق نداره به نمفت که هم اجزه زیادی تلاقه حق نداره اصل این از که عموم نداره برای این برای سن که این مهمون این هم که در کتاب اینه ازدهی به سنت منحف شده این منشعه شباک شده به خدا حالات اسما را زیادی چون وارد میخواهم بارد چون کشم؟ بحث درست میشه خود این آیات مبارکه را قبل بعدش ملازمت کنم و خلاصه میکنم. نه اندی به این شیج سکندهش که مراجعه این دیوی استش ردوست نه شاهد که مثلاً اون بخت تاکر بود. این رو خودش مراجعه بوده قبل واردش ملازمت و خلاصه کنم من از کلمه نقطه نیست، این بحثی که بین درس نداره. ما در اصول در اسلام یک معنای آمد اون معنا اینه که هر اشیاء به کتاب صادسه سنت آمده تکمیل داده یا نداده. در از میاد علماء اهل سنت مثلا خلافت مثلا عمر میگه که تکمیل می‌داده. این یه دعوای ریشه مثلا ما در واقعه رضا فقط مادر و خواهر داریم. خوب دقت بکنید. اما در سنت به غمبر امو هم اضافه شده در سنت به غمبر برادر هم اضافه شده بعد همون یه همون ارزا آه همون نظر یا یه همون ارزا این یه ردشی توسورم در اسلام که در کتاب در یه حضیه سنت یا تعمیم میده یا سنت یا توضیح میده این در حد همینه خاص همینه بگر سامنی؟ با آیه یه فرقی میشه بسند بسید اصول مراجعه در تفسیر آیا رو برخونم مسالحه ببرمان که از پس بنابراین این آیه مبارکه اصلا متلقات تحمیم نداره به سنت رسول الله ازده برای با این تابطه بس بس برمان. بس برمان برمان بس برمان